حکایت ملک زوزن را خاجه بود، کلیم و نفس، نیک مهزر که همگنان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نکوگی گفتی. اتفاقاً از او حرکتی در نظر سلطان ناپسند آمد، مسادره فرمود و عقوبت کرد. و سرهنگان ملک به سبابق نعمت او معترف بودند و به شکر آن مرتهند، در مدت توکید او رفق و ملاطفت کردندی و زجر و معاقبت روا نداشتندی، صلح با دشمن اگر خواهی هرگه که تو را در قفا عیب کند، در نظرش تحسین کن. سخن آخر به دهان می موزی را، سخنش تلخ نخواهی، دهنش شیرین کن، آنچه مضمون خطاب ملک بود، از عهده بعضی به در آمد و به بقیتی در زندان بماند، آوردند که یکی از ملوک نواهی در خفیه پیامش فرستاد که ملوک آن طرف، خطر چنان بزرگوار ندانستند و بی ازتی کردند. اگر رای عزیز فلان احسن الله و خلاصه به جانب ما التفاتی کند، در رعایت خاطرش هرچه تمام سعی کرده شود و اعیان این مملکت به دیدار او مفتخرند و جواب این حرف را منتظر. خاجه بر این وقوف یافت و از خطر اندیشید و در حال جوابی مختصر چون که مصلحت دید بر قفای ورق نوشت و روان کرد یکی از متعلقان واقف شد و ملک را اعلان کرد که فلان را که حبس فرمودی با ملوک نواحی مراسده دارد ملک به هم برآمد و کشف این خبر فرمود قاصد را بگرفتند و رسالت بخاندند نوشته بود که حسن زن بزرگان بیش از فضیلت ماست و تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان اجابت نیست به حکم آن که پرورده نعمت این خاندان است و به اندک ماه تغییر با نعمت بی وفایی نتوان کرد چنانکه که گفتند آن را که به جای توست هردم کرمی عذرش بنه هر کند به عمری ستمی ملک را سیرت حقشناسی از او پسند آمد و خلعت و نعمت بخشید و عذر خواست که خطا کردم تو را بی جرم و خطا آزفدند گفت ای خداوند، بنده در این حالت مر خداوند را خطا نمی بیند، تقدیر خداوند تعالی بود که مرین این را مکروحی برسد، پس به دست تو اولاتر که سوابق نعمت بر این بند داری و عیادی منت، و حکما گفتند، گر گزندت رسد ز خلق مرند. که نر راحت رسد ز خلق، نه رنج، از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که این دل هر دو در تصرف اوست گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بین دهل خیرد.